ماها چو به چرخ دل برایی، چون جان به تن جهان درایی ماها چه لطیف و خوشلقایی، ای ماه بگو که از کجایی داریم ز عشق تو براتی وز و از قند لطیف تو نباتی از لعل لبت بده زکاتی ای ماه بگو که از کجایی در ما بنگر چو می شناسی ای ماه بگو که از کجایی زانسانز شراب تو خرابیم که از خود اثری همین نیابیم بفضای اگر چه می ای ماه بگو که از کجایی در زیر درخت تو نشینیم و میوه دلکش تو چینیم جز گلشن روی تو نبینیم ای ماه بگو که از کجایی دم که زباده تو نوشیم بز روشن جان و تیز هوشیم بیهو شدیم و بس به ای ماه بگو که از کجایی ای رشگ بتان و آرا آرام دل خراب مستان پارا به مکش زیر دستان ای ماه بگو که از کجایی از ماه تو راست تا به ماهی ای ماه بگو که از کجایی ای بگو که از کجایی ای ماه بگو که از کجایی